بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وAli وصحبه أجمعين ما بعد سوى حفظوا من درس سأذار صي السور يوسف عليه الصلاة والسلام آية سدو دو فرمضي الله جل شأنه ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك من أمباء الغيب يشتك خونيت سدو يك آية و نشانه بر صدق نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم از قصه یوسف این صدایی که گذشت صد نشانه بود صد برهان بود صد دلیل بود بر اینکه این مسائلی که به تو محمد علیه الصلاه و السلام بیان شد از غیب بوده تو حاضر نبودی تو اونجا نبودی تو نمیفهمیدی از این قصه و داستان کسی بهت نگفته بود کتابی نخونده بودی اهل خوندن و نوشتن نه که فقط تو تطاب الله صلی الله علیه و سلم فقط تنها نیست. بلکه حتی قومت نمی دونستن یوسف کی بود یعقوب که بود برادرانش کی بودن حتی خود اهل کتاب قسمتی از این داستان رو میفهمیدن یک گوشه اصل ماجره از کجا شروع شد و به کجا خاتم یافت رو نمی دونستن ما یه سری تناقضات داریم در خود تورات عهد قدیمش تناقضات داریم از یه طرفی برادران یوسف مقصرن از یه طرف مقصر نیستن یوسف خودش رفته علیه السلام رفته مثلا برادران مثلا مکری نکردن که او را بردارن چیزی که واضح الله در قرآن میگه یوسف نرفته برادران به زور اومدن با مکر و حیله یوسف را برداشتن بردن نگه یوسف خودش بره دنبال برداراش بگرده بعد گم بشه و گرب بیاد و رو بخوره چه چیزی ما نداشتیم الله جل شانه اصل ام ماجرا و واقعیت ام ماجرا رو اینجا برای ما بازگو کرد که نشانه صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادعای اینکه پیغمبره از خودش حرف نمیزنه پیغمبره پیغامی از سوی الهی آورده برای بشر چون اگر پیغمبر نبود نمیتونست این اخبار را بازگو بکنه یک عالم غیبی کسی که آگاهی و دانایی داشته نسبت به امور غیبی را مطلع ساخته خودش مطلع نبوده خودش نبوده اونجا بشره و ما کنت لدیهم نبودی محمد عليه الصلاه و السلام لدیهم اذ اجمعو خطاب الهی از باب و احترام اینه که ما بگیم رسول الله صلی الله علیه و السلام خب چون اینجا خطاب الهی و ما کنت تو تنبودی ای رسول ای پیغمبر ای محمد و ما کنت لدیهم اذ اجمعو نبودی اون زمانی که اونها جمع شدن و اتفاق نظر کردن بر اینکه اول اینکه یوسف بکشن و بعد او رو در چاه بندازند اذ اجمعوا امرا هم و همی هم کرون وقتی که نقشه می برنامه می رخدن. زمانی که مکرو نیرنگ و حیله و دسیسه به کار بردن برای این که چطور از دست یوسف خلاص بشن تو اونجا نبودی حاضر نبودی این ماجرا رو هیچ کس جز الله نمیدونه. الله هست که تو را از غیب مطلع میسازه که این برنامه بود، این دسیسه بود، اینجنی واقعیتی رخ داد، اینجنی انشتباهی رخ این اینجنی این حسادتی به وجود اومد. الله هست آگاه از خلائقش از مخلوقاتش. و یک گوش زدی بربشر، که بدونن الله مطلع بر غیب و اون‌ها را محاسبه میکنه فکر نکنن که الله اونا نمی بینه یا اونا بر اساس اون چیزی که در غیب و پنهان و نهان گذشته الله محاسبه‌اشو نمیکنه نه. الله تمام امور را در نظر میگیره حتی از اون چیزی که در دل حسادت مسئله قلبی بود بروس که پیدا کرد تبدیل شد به گفتار بیان مکری نه رنگی حیله ای به کار خب الله با توجه به این عمل قلبی و پیامدهایی که داشت الله میاد ها رو میگذاره من اگر حسادت را الله میگه حرام کردم چرا حرام کردم چی شد چرا حسادت حرام شد یه طرفش زیر سوال بردن قضای الهی تقدیر الهی فضل الهی الله ذالک فضل الله یتی من یشاء یکی رو یه چیزی میده یکی دیگه رو نمیده تو چرا الله رو زیر سوال میبری چه هستی در آفرینش الهی الله آفریننده است لا یسال ما يفعل تو نمیتونی اجازه نداری الله رو زیر سوال توك <تصفيق> مخلوقي وهم يسألون تو السؤال مش روزقامة اسفعل خودت ناس فعل الله كرا الله فريد كرا الله فلان كارت كرا الله بفلان اداد انشو عليا حصادات انشو عليا در دل ایجاد میشه و از وسوسه شیطانی باید خاموشش کرد با وحی الهی با ایمان و قضا و قدر وقتی انسان قرآن نخونه وقتی انسان سنت نخونه خود به خود این آتش همچنان شعلهور خواهد بود و او را میسوزانه و سبب میشه که در رفتار و گفتارش بشه بدترین نوع حسادت انسان که به زبون بیاره او oh, فلانی چه ماشینی داره فلانی چه منزلی داره فلانی چند تا همسر داره فلانی نمیدونم چند تا بچه داره فلانی نمیدونم چند تا مغازه داره فلانی نمیدونم به زبان آوردن این الله بر سر یک بنده ای داشته یکی را داده یکی دیگر را نداده اون چیزی که تو نداری به چشم بیاری و به زبان بیاری این بدترین و پسترین نوع حسادت گناهی از گناهان کبیر است چون قضای الهی را در زیر سوال میبری مقدرات الهی را در زیر سوال میبری جایی مستقیمن نمیگی جایی میخوای. از اون حسادتی که در درونته پنهانش بکنی بی درد دیگه اونا کن اگر دزینه کرد اگر قاچاق نمیکرد، اگر فلان نمی‌کرد اینجا نمی رسید تو زورت رو چی اومده که این چرا ماشین فلانی سواره چرا خونه فلانی داره چرا نمیدونم چندتا مغازه داره زورت رو اون اومده که طعنه در حلال و حرام بودن مالش میزنی یا در نرو کاسبیش میزنی. تو مسئول عمل دیگران نیستی تو مسئول عمل خودتی اون دیگری چی داره از کجا آورده به تو ربطی نداره دیدی که دزی کرده مچشو بگیر بگو اینجا دزی کرده ولی که تو بیای اصل مالش و کاسبیش و روزیش رو زیر سوال ببری که چرا داره و از کجا آورده این تو مسئولش نیستی اینو باید ما بشو باشیم در زندگیمون چون انسان نمیدونم لازم نیست که الله برامون تعریف بکنه حسادت یعنی این که مثلا به تو دوست داشته باشی یکی مثلا مالش رو از دست بده یا نمیدونم مریض بشه این لازمش نیست هرچند که این قضیه به وجود میاد وقتی که یک شخصی رو میبینیم مثلا روی پای خوشش ساده تنومنده تو وقتی که چشمیش میزنی یا حسادتش میکنی اون طرف از پا در میاد یک نیرویی هست از غیب الله گذاشته در درون تو که تو بتونی او را نابود بکنی یا او را حلاک کنی یا از با بیاری اینو گذاشته به خاطر همین اون شخصی که الله منتی داده بهش باید مواظبت بر اسکار صبحگاه و شامگاه اسکار خواب داشته باشه که یک سپری باشه در مقابل حسودان یک سپری داشته باشه در مقابل اونایی که چشمشو شوره خاطر همین سوره نازل میشه سوره فلق قل اعوذ بر رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسقه اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حسد محمد عليه الصلاه و سلام پناه میبرم قل تو بگو ای پیغمبر تو بگو خناه می برم به الله از شر حسود وقتی که حسادت می این قد جرم جنایت حسود بالاست این الله این قدرت را بهش داده الله قدرت رو در اون حسود گذاشته اگر قدرتی نداشت از ما نمیخواست که بهش پناه ببریم از این قدرت مثل ابلیس ابلیس که الله او را آفریده او را آفریده شر برای ما و از ما خواسته از این شر بهش پناه ببریم ما را امتحان کرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همون تو تو به الله پناه میبری از شیطان الرجیم تو هم از شر حسود باد به با الله پناه ببریم از شر حسد ایندا شما نگاهو کنید این دوتا با هم در یک واقع شدن الان ابلیس انسان حسود همونطور که تو از ابلیس با الله پناه میبری باید از حسود با الله پناه ببری وقتی که تو حسادت میکنی تو میشی ابلیس صفد کسی که با الله باید از شرش با الله پناه ببری خیلی بده اینکه تو از الله بخواهی که شر اون حسود رو از تو کم بکنه، سعانت به طلبی، یاری به از الله برای اینکه نیرنگ اون حسود به خودش بر برگرده. یعنی وقتی که تو پناه بردی از شر حسود، مثلا مورد حسادت واقع شدی، خودتو رقیه کردی، کف دست تو برداشت، شروع کردی به نشدان، اجی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالم، بنیات قلبی با زبان الله رب الناس اذهب البؤاک کردی خوندی خند دمیده یک بار، دو بار، هفت بار چیزی که در سنت اومده، بسم الله الرحمن قل هو الله قرار فرآورده به الناس بعد میدمی زبان و دندونت خراب می میدمی بدنت میکشی وقتی که اثر اون حسادت از تو شر اون حسادت از تو چی میشه دلنم به الله پناه بردی و متوسل شدی به کلام الهی سخنانی که تلاوت میشه تو پناه بردی به کلام الهی از شر اون حسود چی میشه اون حسودی که خرد میشه اون حسودی که ذره رو زیان اون حسادت به خودش برمیگرده اومده به تو آسیب بزنه اون آسیبه منعکس شده معکوس شده اومده به طرف خودش چرا چون الله شیاری خاصی به این که نیرنگش به خودش بر بگرده حسادتش به خودش بر بگرده شرش را الله از سرتو کم کنه بس انسان حسودم باید مواظب باشه که یک جوی خورد بشه یک جوی مبتلا بشه هنم برادران یوسف خورد شدن تحقیر شدن الله اینشینین عقوبتشون کرد که برای گدائی و حاجت و نیاز بیان پیش برادرشون یوسف محتاج یوسف علیه الصلاه و السلام بشه ما اومدیم داریم می‌بینیم از فخر از درستگی فخر و درستگی در اثر چی بود در اثر همون حسیان و از اوامر الهی همون معصیت همون حسادت الله از انسان ابتلا میکنه و ما اکثر الناس ولو حراست من مومنین و ما اکثر الناس ولو حراست ی قسمتش حرس و شفقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر هدایت امت میدونیم که تو حریصی بر هدایت مردم میدونیم که تو هم مغمتی که مردم مسلمان بشن بیانی قصه ی یوسف رو و بگی یگانگی الله پی ببرند مسلمان بشن میدونیم ولی کن بدان خطابش به رسول الله صلی الله علیه و سلم الله شانه ولی کن بدان که بیشتر مردم با این وجود که این ادله و براهین آشکار و واضح ولی کن ایمان نمیاره. ولی که ایمان نمی آورن. داری میگی واضح این آیات را براشو میخونی و ما اکثر اون ولی ولو حاست و ما اکثر الناس، بیشتر مردم ایمان نمیارن خیلی هم داری حزینه میکنی از وقت خودت از عمر خودت برای ایمانشون ولی بیشتر مردم ایمان نمیارن چند تا مسئله هست اینجا در این آیه مسائلی که ما باید به کسی ریاد کرده خیلی زیاده یه قسمتش برمیگرده به دعوتگر. کسی که دعوت میده نباید هم مقعش این باشه که حالا چند نفر حرفم گوش دادن چند نفر پای من برم نشستن چند نفر نشستن. قلب دست من و شما نیست. این نک تهدی من نحببت ولكن الله یهدی منشه. هدایت دست الله دست من و شما نیست. نباید نگاه بکنی که چند نفر حرفمون رو گوش میدن چند نفر گوش نمیدن. این یه قسمت قسمت دوم اینکه دعوتگر هم مقع باید ایمان باشه که مردم رو به بهش بگه. نه هم مغممش دنیا و اینکه در این دنیا خوش بگذارن راحت باشه و نه هم مغممش باید این باشه که مردم رو نجات بده از اون عذاب دردناک از اون سختی جهنم از اون سختی قبر یوسف علیه السلام در زندگی دعویش چقدر خوشی داشت مگه بچه بود ده، 11 12 سال میدوزنش از پدرش و تو چاش میندازن و اسیر میشه و برده میشه بعضیا میگن سی سال بعضیا میگن 40 سال با زندانش و با اسارتش زمان برده 40 سال 30 سال کم نیستو از پدر دوره از خانواده دور تک و تنهاس بردگیش یه طرف زندانیش یه طرف بعد که آخر کار به هر پادشاهی هم میرسه و به خزانه داری میرسه و همه کارای پادشاهی مثل میشه میگه تو وف بنیم مسلمن آرزوی مسلمان از دنیا رفتن را میکنه یوسف علیه الصلاه و سلم. چقدر خوشی داشت یوسف علیه الصلاه و السلام پر چقدر سختی داشت ما بیید نگاه کنید در زندگی این پیغمبر الهی خود پدرش یعقوب علیه الصلاه و سلم. ازدواج میکنه، بچه میاره که نور چشمش باشه، بلای جونش میشه وقتی که الله در قرآن میگه که از فرزندان و مال شما دشمن شما میشن، اینجا بچهای های خودشان دشمنش شدن جگر جگرگوشش رو از دستش از جلوی چشماش بردن جدا کردن چقدر سخته برای پدر بچهش رو از دست بده یا بچهش گم بشه چقدر سخته آزار اذیت ببینه از حسادتشون ببینه از زخم زبانشون بشنوه ببینه از دروغشون. پدره براش سخته بچهش جلوبش داره دروغ میگه روز روشن رفتن یوسف رو بردن بعد آخر پیراهن رو مردن به دروغی که این پیراهن یوسف پیراهن سالم سالم دروغو حافظ است که به فکر این نبوده که آقا این پیراهن هم پاره بکنه یعقوب میدونه که این داره دروغ میگه روز روشن داره دروغ میگه زندگی یعقوب اینقدر سختی ها داشته الان سن نکوهنسالی که الان دیگه اصاب دسته به زود را میره بچش را پیدا میکنه و به بچش میرسه یوسف علیه سات و سلام. سدگی در سختی بوده این قاده است که در دنیا دنبال خوشی خودت نباش دنبال خوشگذرانی نباش دنیا جای خوشی نیست به فکر سعادت ابدی باش این از درس تفسیر امام ابن کثیر بر این آیه که مذهب ما هست. یک است تفاسیر عجیبی در این باب. خود تفسیر حسن خودش یک تفسیر از میان دیگر تفاسیرها خودش یک وزنی داره. وزن تفسیر ابن کثیر و شهرتش و مکانتش و جایگاهش در میان مسلمان ها علتش بخاطر خاطر تفسیر با دلیل بودنشه یعنی قرآن را تفسیر میکنه با توجه به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیاد که مثلا از رأی خودش نظر خودش بیاره نه. احادیث را برات لذیف می‌کنه. در این آیات چند آیه که هست ما منون کسیر مسائل رو بیان میکنه که بیشتر مردم در مقابل دعوت سرکشن دوچار شرک میشن ایمان نمیارن در اون امتحاناتی که الله گذاشته از اون امتحانات موفق در نمیان که کلیدهایی هست در قرآن با توجه به اون ما میتونیم نوع انحرافه نوع گمراهی راهمون راه راست راه مستقیم باید باشه شخص راه گم میکنه و دچار شرک میشه و دچار انحراف از ایمان میشه جاده ایمان ایمان جاده داره بیشتر مردم در این جاده نیستن راهشون رو گم کردن چطور راهشون گم میکنن جایی راهشون رو گم میکنن خداشون رو نمیشناسند پروردگارشون آفریدگارشون در سوره ناس حالا یک قسمه سوره فلق داشتین الان سوره ناس. قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس همسته تای فقط انحراف مردم در این تا نگاه بکنید قل اعوذ برب الناس چطور شخص ایمانش از دست میده با شرک در ربوبیت الهی در خالق و آفریدگاری الله جل شانه در اینکه الله را یک تا قرار بده در آفرینشش شریکی براش قائل نش روزی رسول الله صلی الله علیه و با اصحاب یارانش رفته بودن بیرون بارون میاد شب نشاستی بودن قبل از اینکه بارون بیاد نگاه آسمون کرده بودن آه ستاره ی فلانی بیرون اومده ستاره سُهیل ستاره ی فلانه ستاره این که بیرون بیاد دیگه بارون میاد این به سبب این یعنی بارون میاد که اعتقادی از قبل از جاهلیت از قوم ابراهیم بهشون رسیده بود که اعتقاد خرافاتی بود یک اعتقاد شرکی و کفری در اینکه لاهوت که الوه کل در ناسوت که مخلوق جسمانیه، الای روحانی در الای جسمانی حل شده، این الای جسمانی بعضی‌ها میگفتن فرشتگانن، بعضی‌ها میگفتن ستارهگانن، این الای روحانی اومده در این ستارهگان حل شده و هر کسی برای خودش ستاره ای داره، یعنی من خالقم این ستاره است، فلانی هم اون ستاره خالقششون، اون الای روحانی در این ستاره فلانی حل شده و هر کسی برای خودش یک خدایی داره، بعد دنبال خدات بگردید. بعضی اعتقاد داشتن که نه این الای روحانی در ملائکه حل شده، و بعضی دیگر اعتقاد داشتن که هر واکنشی هر تقدیری در کن رخ میده بارانی سیلی همش برمیگرده به اون خدایی که از اون ستاره که اله روحانی لاهوتی در اون ناسود حل شده این ستاره مکلف بارانه چون الای لاهوتی در اون ستاره حل شده و الله این ستاره را گذاشت از خودش جدا کرد به عنوان یه خدای دیگر برای این مقدر صحابه نشستی بودن نمیدونستن از جهلشون گفتن که خب این ستاره اومده این ستاره بارون اوورده دیگه این با این ستاره بارون اومده دیگه دیگه گفتن اصلا خدا هست که بارون میرسونه این ستاره چه کار است صبح که میشه رسول الله صلی الله علیه و سلام یاد ناراحت میشه و بیاد نظر اصحاب و یارانش میگه الله دیشب بر من کرد که دیشب کسانی بر من کافر شدن و به ستاره گان ایمان آوردند و کسانی دیگر به من ایمان آوردند و به ستاره گان کافر شدن کسانی به ستاره گان ایمان آوردند به من کافر شدند و کسانی به من ایمان آوردند و به ستاره گان کافر شدند چطور فرمودند رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانی که گفتم ستاره فلانی که بیرون اومده با توجه به این ستاره این بارندگی و بارش شده اینها به الله کافر شده ستاره خب چه کاره است سببی است نیست برای اینکه بارون بیاد نیاد ستاره چه کاره است الله که یونشه السحاب الله هست که ابها را به وجود میاره الله هست که اب را به این ور ور میبره که بارون بیاد امسال پیش خودم خوشصالیه ستارگان کجان؟ دست ستارگانه ستاره چه ربطی داره به؟ چه ربطی داره به؟ شاید شخصی بات وجه مثلا به زمان بندی که چون در این فصل بارش بیشتر میشه بگه خب الان فصل عوض شده بهار بارش و بارون در میشه ولی ربطی به ستاره نداره ستاره کاره نیست دخیل کردن ستاره در مقدرات در تقدیرات این میشه چی شرک میشه شرک شرک در رویت کل هود و رب به ناس رب ناس رب, رب آفریدگاره خالقه پروردگاره روزی رو او میرساند او از عدم تو را ایجاد کرده چیزی نبودی این یک مثالی که اینجا یاد میشه در تفسیر ملک ناس ملکه مالکه ملکه یومیددی ملکه مالکه. از صفات ملک شنیدنه از صفات ملک دیدنه از صفات ملک قدرت از صفات ملک لطفه از صفات ملک رحمته سفات ملک ملک پادشاه پادشاه نمیتونه حک بکنه مگر اینکه قدرت داشته باشه الله قادره پادشاه نمیتونه حک بکنه مگر اینکه در نظر داشته باشه سربازانش قومش نمیتونه حک بکنه باید ببینه باید بشنوه مالکه خیلی ها در شرک و کوف در این باب میفتن در این موضوع میفتن در این توحید میفتن الله را با یکتا قرار بدی در آفرینشش. الله را باد یکتا قرار بدی در اسم و صفاتش. خیلی اومدن پاشون لغزیده در این باب گفتن خب چطور میشه الله بنووه چطور میشه الله ببینه مگه الله جسمه، می مگه الله انسانه، انسان گوش داره می ششنه خدا گوش داره انسان چش داره می بینه. انسان چش داره جلوش ببینه خداگر بخوا جلوش ببینن پشو سرش نمی که یعنی نقشه همش قیاس اوت و خودت قیاس گرفتی من که جلوه می بینم خدا میگه جلوه اش میبینه فقط من که فقط اینجا میشینم خدا فقط همین جایی که چند نفر روی زمین میشینم قیاس در شرک افتاد الله را با خودش قیاس گرفت اومد کل صفات الهی را نفی کرد الله را شبه خودش در نظر گرفتن سبب شد که این شراکت این قیاس سبب شد که در تعطیل بیفته در نفی صفات الهی بیفته در صورتی که الله گجت کرده در قرآن که کسی را با من قیاس نگیرید فلا تضربوا لله الامثال برای الله مثلا نزن نگو گوشی مثل من نگو چشمی مثل من اللهه می بیند تو هیچ خلقی مثل اون نمیبینه قابل قیاس نیست نه دیدنش نه هیچ صفت الهی ملک الناس این پادشاه با این پادشاه دنیا فرق میکنه این قهار این جبار الله در قرآن میگه لیس ک مثلی شی هیچ چیزی مثل الله نیست تو چطور مثال میزنی برای خوده اگر ببینه پس لازمش اینه که چش داشته باشه و چش نمیدونم تو یک جسم یک نمیدونم چشمم دیدنش محدود چرا با خودت قیاز گرفتی تو کی چی چی خود حساب اعاب کردی؟ ليس که مثل هشه و هو سمی البصیر که مثل الله نیست والله سميع ها بثیر میشنود؟ و می بیند. بس وقتی که الله رو با خودمون قیاس گرفتیم جل شانه انحرافه پیش میاد شرک و کفر وجود میاد نقض قران به وجود میاد یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض نام احکام رو قبول داریم ولی صفات الرحمن عرش سوا قبول نداریم نه این بعد دنبال راه حل بشیم دنبال مجاز باشیم بگیم نه به معنی استیلا هست چیره شدن. الله بالای عرش نیست الله نمیشینه الله نمی نمیبینه چه قرانی شما بهش ایمان آوردید آیه این قصه و داستان یوسف همش مجاز بود یعنی افسانه بود همش الکی بود خواب بود خیال بود یا واقعیت بود. سخن الهی قابل درک بود یا قابل درک نبود؟ فهمیدید مک چیه؟ فهمیدید حسادت چیه؟ آیا اینا براتون اصلا ملموس بود یا نه؟ اصلا خواب خیال بود؟ نه ملموسه. می‌دونید واقعیت داره، حقیقت داره. صفات الهی ما می‌دونید حقیقت داره، واقعیت داره. انسان می‌تونه درک بکنه. می‌دونیم معنای دیدن چیه؟ می‌دونیم معنای چیه؟ ولی کیفیتش رو در الله نمی‌ری چون الله غایبه. الله غایبه. نمی‌بینیش. هیچ کسی امور رو ندیده که ما بخوام واش قیاس بگیریم. نه خدا الله را دیدیم، نه مثل الله را دیدیم. حتی رسالت از, از, از, از معراج میره. صح سوال می‌پرسن: دیدی الله رو؟ میگه نه. جوابی از نور بین من الله بود در واقعیت و حقیقت هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله جل شانه نور ندیده کسی که ندیده نمیتونه بس بکنه ما نمیتونیم الله را جل شانه وصف بکنه الا که خودش ما را مطلع بسازه از اوصافش بگه من رحیمم من مجیدم من ودودم من لطیفم من جبارم من قهارم کسی نمیتونه با علم خودش الله را کشف میکنه صفات الهی را کشف بکنه نه باید الله خودش از خودش خبر بده که من کیم چی ام چطورم یک آیه را بخوای نفیش بکنیم مثل کل قران را چقدر از مردم هم که ایمانشون رو میبازن به نسبت الله در این باب خیلی بودن خیلی از فرقه ها بودن از که تکفیرشون نمی کنم ازدارن بین خودشون خدا دوچار تحویل شدن شبهی داشتن از قول عرستو قول فلانو از این شرک دیگر شرکی دیگر در صفات الهی شرکا در صفات الهی زیادن مثل قضا و قدر نفی قضا و قدر علم الهی علم سابق الهی بعضی اینو زیر سوال میبرن چطور الله از قبل میدونه زیر سوال بردن الله در قضا و قدرش در علم سابق شرکه میگن نه ما مجبوریم ما کاسبیم شما فکر میکنید ظاهر حرفی حرف راحتیه مثلا بعضی جا انسان حرف میشته که از شرک چاقو نمیبوره الله است که میبوره این نفی اسبابه نفی اون سببی که الله قرار داده برای بریدن یا آتش نمی‌سوزونه. سحر امر خیلی طبیعیه. خب. چخوی دیگه نمی‌بوره دیگه. اگر می‌برید، ابراهیم علیه السلام گردن می می‌برید. نبرید، چون چخو نمی‌بوره. کی هست کی می‌بوره؟ الله داره می‌بوره. یعنی ما کاری نیستیم. ابراهیم کاری نبود. نفی مشیت از ما، نفی مشیت الهی از اون چخو و از ما. ما کاری نیستیم. ابراهیم هم کاری نبود ابراهیم هم نمی‌برید. کی هست کی می‌برید؟ الله داشت می‌برید. این نفی چیه؟ نفیه مشیعت از من و شما یعنی ما کاره ای نیستیم ابزاری که در اختیار ما قرار داده شده ای نیستن. یعنی قوم ابراهیمی که رو تو آتش انداختن نباید محاسبه بشن چون الله بود که غرو پرد کرد تو آتش و اون آتش هم الله است که می‌سوزونه یا نمی‌سوزونه بندگان و اون آتش اینا کاری نیستن ما مخلوق مجبوری کاری نیستیم ما نباید پس محاسبه بشن دیگه بالا خودشون می‌کنین بله الله اینطوری اینها رو برای جهنم خلقت کرده اینا برای رو بهش نفی اختیار از ما اگر نفی اختیاره پس چرا الله گفت فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم یعنی زیغ انحراف است که ما پیش اومد الله در هدایت رو برانوا بس چرا, چرا اثبات مشاد می که ما رمید اادرمید ثابت بر تو نبود وقتی که اون نظ رو پرت کردی ولكن الله رامه اماار رممید ادراید زمانی که پرت که تو پرت کردی تو اختیار داشتی در پرت کرده میتونستسی پرت نکنی ولی تو پرت کردی ولی اثابت هدف دستی که بود اینکه به هدف بخوره و اون مشکیم بمیرن الله بود که این توفیق را داد ولی که این پرت کردن از تو بود این اختیار رو داشتی که پرت بکنین و نکنی این اختیار داشتی که بری به نبرد بد اوهود خندق این اختیار رو داشتی فیلم نبود که خواب کرد نه بود حقیقت بود و بود. بس این شرک این وقتی که تو بیای نفی اختیار است خودت بکنی و الله را مجبور بر رفتار و کردار خودت قرار بدی الله تو رو مجبور کرده این اعتقاد مشرکینه لو شاء الله ما اشرکنا اگر الله ما که مشرک نمشیم الله خاصه همینطوری مشرک را فریده. این حرف همون حرف جبری است این همون حرف اونهاست. است چوگو خدا میبره. آتش نمیسوزونه خدا میسوزونه این شرک چقدر مردم در گمراهی افتادن در این باب بدترینش نور السقوم اله الناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس اله معلوه یعنی محبوبه الها یا اله و علوه ما باید به لغت بر بگردیم، ویشیابی بکنیم تا بدونیم که این واژه ها این کلمات چه تفاوتی با هم دیگه دارن رب اله نیست در لغت عرب رب بلک نیست رب از پرورش میاد پروارنیدن میاد ملک از مالکیت میاد و اله از تعلیح میاد از تعظیم میاد کسی که تعظیم میشه با عبادت و ذلت با, با محبت کسی که ستایش میشه کسی که ستودنی است الله ملوه قلباس اینها برای اینکه مردم بدونن چند نوع توحید ما داریم علماء آمدن تفکیکش کردن گفتن قلعوذ رب ناس توحید روبیته یعنی که الله را یک تا قرار بدیم در آفریدگاریش ملک ناس یعنی توحید اسماء و صفات الله در صفاتش یک تا قرار بدیم این تفکیات رو کرده که مناطق امن لغز اگر همشون به یک مسئله برمیگرده حقوق الهی از یک تا پرستش و خداشناسی اینکه او را یک تا قرار بدیم در آفرینشش و صفاتش و افعالش به نسبت افعال ما خودمون قل اعوذ برب الناس رب الناس و ملک الناس هر دو تا افعال الله الله را افعالش یک تا قرار بدیم. اله الناس در افعال خودمون اون عبادت و پرستش و تعظیمی که از ما رخ میده ما انجام میدیم الله را اون یک تا قرار بدین حقوق الهی حق الله بر ما حق الله او یک تا قرار بدین در افعالش و حق الله بر ما که در پراستشش در عبادتش او را بدين تا قرار برید این دونه علم یک عمله قل اعوذ برب الناس رب الناس و الناس علمه فاله الناس عمله معلوه معبوده کسی که فرسیده میشه خیلی شرکا در این بابه این ابن کثیر خیلی احادیس را میاره گفتاره من حلفه بغير الله فقط أشرق قسم بغير الله شرک جای بدبینی و تشاومن ان الطیارته شرک تطیرا بعد بینیه مورو میکندن مشترکین کف دستشون فوت میکردن این ور خوبی، این این ور رف... چه ربطی داره شرک جایی تمیمه میبستن، تعویذ میبستن پارچه زیارت سبز پارچه سیاه پارچه نمیدونم تعویذ مله ها 4 تا دعا توش نوشتن این نتما و تی شرک تشرک تمایم و سی که شر چش زخم میاصدا بکنه چقدر آن در امت زیاده از تمایم سوار تو میشی زیر پات گذاشتن نعل اس است شرک تمام. سوار ماشین میشی یه چشم بنفشی گذاشتن که آقا این ماشینه چش نخوره اون صاحب ماشینه چش نخوره یه پارچه هم دوره فرمون سبزم چرخونده بود از پارچه زیارتی متبرک ساخته با اون زیارت چیه؟ در خونه میری آب دریا آویز کردن چیه؟ رسول الله صلی الله این حرف من نیست این سخن رسول الله صلی الله علیه و ابن کثیر میگه آره. ان التمائم شرک تمائم شرکی تمام تیمی می است چقد امت در گمراهی افتادن در این باب این کار وهابی ها این ابن کثیر در تفسیرش آورده 500 سال قبل از محمد بهاب رفتی وهابی ها نداره این شافعی مذهبا آورده تو کتابش رفتی به کسی نداره که بخواد به چشمه نبی بینی این قبل از ابن کثیر هم بخاری آورده مسلم آورده حدیث صحیحه اینا تو بخاری مسلم این گمروهی ها اثر امت یک نوع دو نوع نیست روزی رسول الله علیه و سلام یک از جنگ ها تازه مسلمان ها همرایش زیاد بودن داشتم بر میگشتم دیدم مشتکی این درختی را شمشیر و لباساشون بهش شاویز کردم بهش میگفتن خواهد تو انواد حدیث دستانه ترمیزی صحیح کفتم روی رسول الله اینا تبرک میجویم این درخت من یک زیارتی متبرکه ای تبرک می جوین. با ما همچین چیزی قرار بده، راست قشنگ میشه، چشموش داره باز میشه. یعنی اجعل لنا الهات انوات کما لهم ذات انوات. قال والله لقد سالتم كما سال بنو اسرائیل موسى. پس ببین بنو اسرائیل دارین میگید والله همون سوال بنو اسرائیل رو از من کردید اون زمانی که با موسا الله نجاتشون داده بود از مصر. اونها هم وقتی که نجات یافتن این مشرکین رو دیدن این کار میکنن. اونها هم همین تقاضا از موسا کرده. اجعل لنا الهنا کما لهم الها. یعنی خدایان دارن تو هم برای ما خدای قرار بده. خدای جسمانی ببینه نمیخواد خدای حسی میخواستن که ببینه خب امتحان دیگه معنا نداره وقت خدا را ببینی و لمسش بکنی یعنی چی ایمان دیگه معنا نداره والله لقد سئلتم كما سئل بني اسرائيل موسى شرکه آدم قبر زیارتی درختی را قرار بده برای یک تبرک بجویه شرک اعتقادات شرکیه جایی ملا از تعویذ مینویسه نتمای متی والا برای اینکه زن و شوهر همدیگه رو بخواهن چی خدار کتاب رو باز میکنن میرم پیش این مله و یا برای جدایی یا برای اینکه مثلا طرف به فلانی برسه خاطر دنیا جایی کلیده به هم نظر دعوا میشه جایی لب غوریه به طرف فلانی نشه دعوا میشه اگه ما بخوام ردیف کنیم از اون اعتقادات باطل خرافاتی که رسول صادق گوشزد کرده ان الطیارات که در جمله طیاره و تطیور و بدبینی و چیزی که سبب نیست سبب قرار بدیم مثلا کلیدو به هم بزنید چه ربطی به دعوا داره جایی نوع سخن گفتنه هرچی داری ما از تو داریم تو نبودی ما چه کار میکردیم خود خودات کجا رفت صحابی من نظر رسول الله صلی اللہ گفت که ماشا الله وشید اگر الله بخواد تو بخوای قال جعلت لیلله ندن من رو شریک الله قرار داری گفتار آدم باید موازم باشه و این انحرافات شعرات بیشتر در این باب بوده در این موضوع بوسیری و صاحب برده است وام سالش سی که قلوف کردن راستشون ابن عربی هست نکره بدون الف فلان ابن العربی عالم از علماء اهل سنت ولی اون زندیق ابن عربی اون کسی که میگفت که سگم خدامه و خدام سگ و فرقی با هم دیگه ندارن این زندیق بیشتر شعرا راهروغ راه این بودن که بعد ازشون اومدن چه از عجمش چه از عربش متاثر ببین بوده مثل مولانا جلال الدین رومی و غیر بوسیری یکی از اینها میگه رسول الله صلی خطاب میکنه قلوبش قلوب غلوف در سخنان نگاه بکنید به رسول الله صلی الله علیه و آله که من لی الوذ سواک انده حد فلایی نمی من لی الود و کی هست ل نهایتعده نهایت پناه کی هست ای رسول الله کهجزو من بهش بناه ببرم منلی اللود و بهی را تو میخوای چقدر بهانه بیاری بهانه بهترراشی عزبش بهش ببددی چه بهانه میخواد ببتراشی؟ کافرش که نمیکنین نمی کنیم. این کافره ولیکن این چی این بت شعر لا اللهله الله کجا رفت؟ لا اله سواهو بله من لی الودو بیه سواک جزتو کی دارم؟ ای رسول الله کبش بنا ببرم گفتاره این گفتارها و این افعال جایی میشن شرک اکبر چه از اون قسمش چه از اون تمیمش چه از اون گفتارش از اون شعرش که میگن این شرها ارفانیه ارفان نیست این شرک محزه این غلوه در انبیاء و صالحینه این نادیده گرفتن صفات الهیه جایی میشه شرک اکبر جایی میشه شرک اکبر خوصا وقتی که در قالب دعا واقع بشه و عبادت واقع بشه ما شرک انواع داریم شرک در عبادت شرک در طاعت شرک در محبت و شرک در دعا بیشترین نوع شرک واقع میشه در دعاست و قال ربکم دعونی استجب لكم و خودش خود اشتداد بزنید ان الذين يستكبرون عن عبادتي اسم الدعاء و گزاشی عبادته سيدخلون جهنم الدعاء هو العباده دعاء عبادته دعاء خالصا لله الدين الخالص دعاء خالص بر الله باش اگر نا خالص شد یک کسی شریکش کردی حالا بره. حالا غیر پیغمبره صدا زدی غیر شفیع شفاعت گدی قرار دادی تو در اون دعا شریک بر الله قائل شد تو مش مشرك نشریه اکبره تو حساس عبادته عبادته کسی در اون با الله قتیش کردی تو مشرک شدی چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند الله جل شانه میفرمایند اغن شوراکه عن شرک من بین سرین شما از شرک من یک تا الله میگه من عمل عملا اشک محاففی غیری ترک تو و شرک من عمل عملا هر عملی انجام دادی اون عملی که عبادته برای الله کسی را با الله توش قاتی کردی اسم کسی تو دعا آوردی به حق فلانی یا فلانی بكون تو شفاعتم بکن تو حرفم را بالا الله اون واسطه قرار دادی ترک تو و شرک خودش و شرکش را میکن الله را بدون واسطه ازش بخواب فقط خودش. تو از تو الله میخوام که من رو ببخشید تو از تو میخوام حجتم رو برده ب کسی رو قاتیش نکن شرک در عبادت. این مطلقاً نه حل سنت شررکبره جایی شرک در طاعته. مثل این مسائلی که بیان کردم تمیم بستن اون توله و تمایم و اینا که چشم زخ محست رو دف بکنه و نمیدونن بهتح به چوب بزن و به به دیوار و ب به در و به به چوب و یا بگو شیشه و آب و و نمک و تا چش تأثیر نداشته باشه دیگه. نماک چه کار است؟ چوب بزنم، چوبه چه است؟ جای این نو شرک شرک در طاعت میشه شرک اکبر و جایی میشه شرک اصغر. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عدی بن حاتمه تمی نازل صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ما اتخذناهم اربابا، ما ارباب رب قرارشون ندادیم، چطور ربشون قرار داریم، آفریدگارشون قرار نادیم دیگه اونها که پروردگار ما نیستن. برا رسول سفر مده مگه اونها نبودن که اگر حرام الهی را بر شما حلال می‌کردن، شما حلال می‌کردید و عکسش. اگر حلال الهی را حلال حرام میکردن شما حرام نمیکردید آری قالف تلك عبادته ان عبادته ناس پیروی از عالمی پیروی از خرافاتی کورکورانه تو الان داره کورکورانه پیروی میکنی این کلید این چوب این نمیدونم تعویذ این کورکورانه بدون هیچ دلیلی بابا اجدادمون گفتن نمیدونم فلان ملا گفته دلا گفته هیچ مسندین حدیثی داری نه آیه قرآن داری الله تو رو محاسبه میکنه چرا چشم تو بسته میاد آیه بعدی قلنا ان سبیلی ادعو الی الله علی بصیره و عبادات باید از روی علم باشه نه روی جهل و جهالت و چشم باز بکنی و باد باشه بر بی. از بینایی میاد از علم و دانش میاد نه کوک رو باشه. اصل بر اینه که این نوشر شرکت از غره چه قسم خوردن چه تماین بستنش؟ ولی جایی میشه که همینها منجره رو به اکبر میشه چرا شرکت از غره خب مثلا ما قسم داری قسم من حرفف ب غیر للفف قد شدن قسم بود در عهد مکی در مکی بود میخوردن در مدینه وقتی که خصاساست این قضیه را دید گفت که دیگه حق نداری قسم بخورین من که حرفف ولی حللله دیگه از بعد عمر بن الخطب رضي الله عنهم تول قسم بيخورد به پدرش بعد رساسه اصلا گفت که نه دیگه حق نداری که قسم بخوری به کسی کسی که قسم میخواد بخوره فقط با الله قسم من کان حال فليحلف بالله من ايشو که خب شيخ بن باز رحمه الله چی میگه میگه خب اگر شرک اکبر بود بعد ازمون اول من میشدن چون من نشودن دلالت بر چی میده مثل خمر اول حرام نبود بعدن حرام شد این اینم همینطور اول کراهت داشت ممنوع نبود بعدن ممنوع شد شد گناه کبیره شد شرک ازغر چون شرک ازغر اینم گناه کبیره مثل ریا شخص عبادت انجام بده چون باباش نگاهش میکنه خوب نمیشه بخونه اینش کسی را در اون عبادت شریک قرار داده مثل کسی خود میکنه در عبادتش در طاعتش فرقی نمی کن. چه نماز باشه چه صدقه باشه چه روزه باشه من روز هم خود نمایی. ولی همین قسم خوردن جایی میشه شرک اکبر شخصی دوزی کرده میگن قسم با الله بخور که دوزی نکردی و اللهو بلهو بله تاللهو به قرآن و قرآن مردست میذاره قسم میخوره عادی این خیالش هم نیست. خب آلا. بگو به اون ولی فلانی اون مرده فلانی اون زیارت فلانی به قسم بخور نه میترسه اون قد که از اون ولی میترسی از الله نمیترسی من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله این قاطی شده الان دو تا شرک شرک در طاعت و شرک در محبت و تعظیم و خوف و این همه قاتی شده اون قد که داره از این مرده میترسی از الله نمیترسی این که از این مله ها اطاعت میکنه پیروی میکنه از الله پیروی نمیكنه تابع هوای نفسشه تابع مله اتخذوا و ورهبانهم اربابا چون کسی که ربی حقه حلال و حرام داره حق داره که بگه این درست این درست نیست هم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم به الله اینا شریکان خدایانی دارن که بهشون بگن این حلال اون حرامه شرکا شرعوا لهم. شر... شر... شرک شریک دیگه شرکا شرعوا لهم من الدين کسی بیاد میگه این حلاله این حرامه مادر همین علما میگن پیروی کورکورانه از عالمی بدون دلیل بدون مستند و خصوصا وقتی که دلیل رو بدونیم خلاف اون دلیل که بر ما هو و شده عمل بکنیم ما دو تا شریک در توحید شدیم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله پس شرکه در عبادت منجر به شرک در ربوبیت میشه وقتی که تو الوه الناس را یک تا قرار ندادی در عبادتش توعتش منجر میشه که اون رب الناست یعنی اله و رب دیگری پروردگار بر دیگری برای پر خود در نظر گرفتی یعنی از صفات خدایی به اون شخص دادی عمله شرع شرعوا له من الدين ما لم يادم انگار که این خدای دیگر است که بر برات تشریع میکنه آفریدگار دیگر است صفات ربوبیت را بهش دادی به خاطر بدترین نوع شرك، شرک در عبادت شرک در عبادت منجر به شرک در روبیت میشه به خیلی تاکید کرده به در عبادت یکتاپرستی و وقال ربكم يدعوني استجب لك وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت برید خصای قرآن رو بخونید سوره هود سوره قصص برید سوره يونس بخونید وقال يا قوم الله بريد سوره انبیا رو بخونید یونس چی هود نوح چی میگه نوح چی میگه ابراهیم چی میگه همشون قال يقام عبد الله هممشو بحثشون عبادته چی این عبادت همه اینا چه در قول، چه در عمل قلبی محبت و الذين امنوا اشد حبا لله چون شرک در محبت واقع میشه چون شرک در ترس واقع میشه الله داره مثال میزنه والله حقا نخشو نه ترسی از مردم از هیچ کسی ترس اول آخرتون الله باشه چون شرک درش واقع میشه اونقدر که از اون مخلوق میترسی از خالق نمیترسی که این ها با هم دیگه قاتی میشن پس جایی این انواع شرک شرک ازغرا وقتی که از تقلید و از جهل انسان انجام بده و اعتقاد باید نداشته باشه و جایی هم از اعتقاد شخص انجام میده دو دچار شرک اکبر میشه سنبهت بر حزار باشه الله جل شانود در قرآن میگه این الله لا یا غفران یو شرک به بر حذر باشه لا یا شرک رو الله نمیپاشی شرک أكبر و یا غفر مادونه شرک از غر برای کسی که بخواد میپاشی مغازه باشه همین شرکا از غران که تبدیل میشن به شرک أكبر خود به خود تبدیل میشن به اعتقاد کتور رسول خشگی میشه وقتی که صحابه میخوان یک درختی برای زیارت برای تبرکی داشته باشن شمشیر رو لباسشون بهش آویز بکنن به تبرک چرا اصلا اینقدر تشکیل میشه چون اینها هستن که سبب میشه منجر میشه که شخص در شرک اکبر بیفته الله وسیله دا قرار داده برای شفا برای اینکه تبرک بهش میشه قرانش کلامش که شفاست نیازی تو نداری به نم زیارت اینه به قبر اینه به, به مرده ای چیز نیازی نداری رو داری تبرک به جو با قران با تلاواتش بخون با نیت شفا بخون با هم مقدس برطرف شه حالا هر چنکی این مساله خیلی بیش از اینه من خیلی خلاصه وار فقط گفتم چکیده گفتم این نمونه مسائل ها هست. در کتاب های سنن صحیح و کتابی مسند اومده همش متصل ما سند داریم و همش صحیح داریم در این باب که ما بین کسی اینجا یاد میکنه پس این آیه یک نوع دلداری به رسول الله صلی الله علیه و سلام باد اس اینکه این قصه نقش شد این داستان یوسف نقش شد ای رسول ای پیغمبر علیه الصلاه و السلام ببین توقع نداشته باش که مردم همه ایمان بیارن بیشتر مردم آلوده به شرکن آلوده به معصیتن آلوده به گناهن حتی فرزندان این پیغمبر الهی یعقوب وظیفه تو دعوت دادنه وظیفه تو اصلاحه قلب مردم به دست تو نیست سبحانك اللهم وبحمدك الله علی محمد و علی محمد